گذر به یه فلان کن در آن زمان که تو جا خیلی مثل این که توجه داره که این مطلب آسکار نشه این مکاتبه. این است که میگه که اشاره چند جا اشاره تو پی که خلوت راز دیده بر سر راه به مردمی یعنی از روی انسانیت و بزرگواری نه به فرمان فرمان بردن و آدم میگه نشد یا نه، از روی انسانیت چنان بران که تو دانی یعنی که خبر هسته از ماجرا تو پی که خلوت را دیده بر سر را به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی پیغام چیه؟ بگو که جان زعیف هم زده هست و خدا را خدا را یعنی برای خدا را اصلا نمیتونم بگم یعنی برای اصلا خود برای هست. را در فعلبی بوده راد به معنی سبب و علت میگیم چرا دیر آمدیم یعنی یعنی به چه سبب به چه سبب در جواب میگه برای این که بارون میونه یعنی به سبب برای حرف اضافه بست به اضافه را این دعایی را مستقلن اصلا مهنی برای به کار میده جان ضعیف هم زده از خدا را یعنی برای خدا ز لعل روح فضایش ببخش از آن ز روح این شینش برمون به خود حاج حافظ یعنی از لعل روح فضا او را حافظ را ببخش از آن که تو دانی یعنی توسه بگو که جان ضعیف هم ده دست رفت اینجا جمعه تا خدا را یعنی برای خدا ز لعل روح فضا او را ببخش این شین اینجا خیلی جاش دقیقه و توجه کن ز لعل روح فضایش ببخش از آنی که تو دام یعنی از لعل روح فضا او را ببخش از اون چیزی که خودت میده لعل رو قبلا گفتم لعل و یاغود هر دو یه جنسه و اکسید آلیمینیومه رنگش هم به مناسبت اکسیدهای دیگری که درش هم یاهود. یه قدری پررنگ و قیمتش بالاتر لعل قدری کم رنگ تره و یه قدری قیمتش ولی یکی هم. در ذمه کلمه لال یعنی سرخ و لاله یعنی گل قرمز رنگ این لاله های سفید و زرد و آل رو هنوز هلندیا ها اخترا نکرده بودن که در اون روز کار بدن اون روز، اون روزای قدیم لاله ارچی در مدرس سرخ بوده و همه دلیم کبتن لاله یعنی گل سرخ لال جواهر لال نهرو لال یعنی سرخ و در راویلپندی محله اصنوز که لالکورتی بهش میگن این شما فکر کنید هندیه هیچ کدونش هندی نیست لالش لاله کرتی هم همون قورتت و یعنی پیراهن لالکورتی یعنی پیراهن صوفا ذلعل فضا اشاره به لبه که تبیه چه بگن لعل لب چه بگن لب لب در هر دو صورت تشبیه لب هست به لعب هر دوش یعنی <تصفيق> گاهی اضافه مشبه به مشبه هم بهه اضافه مشبه هم به, به مشبه هم به. ولی اردوش چی؟ چه بگن قد سر چه بگن سر به قد هر اضافه قد به سر یک وقت اضافه سر به قد کسی نیست ز لعل رو فضایش ببخش از آن که تدانم اینجا زمیر اشاره است صفت اشاره نیست یعنی جای اسم نشسته آن یعنی از اون بوسه. من این دو حرف نوشتم چنان که دیر ندانه میگه من اینو مهرمانه ایز کردم من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانه تو همزه روی کرامت کرامت یعنی بزرگواری اینجا تو همزه روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. یعنی پیشت مهرمانه بمین گفتن که یه داستانی داره از ملک که حالا داستانش دراز نمی خواهد بگم دست بالش از مال دنیا توهی بود و خدمتش و چند تا مهموریتش رجوع میکنن این باها میاره برای اینکه دبیر وقتی میخواست بیره تو ها باید قالیچهی داشته و چادر خوبی داشته و وسایل مرتبی داشته این نداشته بخاره و اصلا باها میگره یه بار دیگه بهش پیشنهاد میکنن این دیگه میگه که من فکر کردم که اگر این دفعه نرم دیگه اصلا دوران خدمه هر اداری من از با نداشتم اصفالم خیلی بود و ناراحت رفتم بیرون شهر روی مسجد خرابهی بود دشستم دراکت نمازه حاجت کندم و گفتم خدا یا من اگر دیگه نرم دیگه حاج زاملکی بعد از این قدم برسهی وجود نمیگذره و حاجت من روا کن میگه تو این حرفا بودم میدم که گده های کوری آمد و یه خود اول اونجا ها رو گشت و بعد و کسی تو این هست؟ میگه من فهمیدم که پاسه زیرین این پاسه چیزی نگفتم و گدا آمد و پورمال فورمال دور مسجد رو گشت و به نظرش آمد که کسی نیست و بعد در و محکم و اومد یه جا رو کند و یه پوزهی در رو و توش مفاری پول طلا بود و یه خوده با اینا بازی کرد و یه خوده شمورد و چیز کرد و شاید خانتایی اضافه کرد و نکرد و بعد هم دوباره درست کرد و کرد و رفت میگه ما خوب خدا آجتون دار خواهد نظام ملک میگه من اینو به عنوان قرض البته از اون که دار ارز کنم که کندم و خوزه رو برداشتم و رفتم و رفتم و رفتم چه دیگه شد بعد میگه که بعد از یه مدتی اون گده کور رو دیدن یه جایی که خاجه هموالنشتر توی محفلی و دیم دورش بودن اینا و چادری بوده یا تاختمانی بوده به هر حال گده هایی میاد کنه و بعد میخوان بنزنش بیرون اینا خاجه اشاره میکنه که نه پرش نه اشاره بشین دو چیز میکنه و بعد خاجه میگه که راستی اون کوزهه طوری یه داهه دست خاشری می‌چزده میگه دوست نما پیده شد میگن مردی که چوبار می‌کنیم برو شد، فلان، این هفته خاجه هم اشاره می‌کنه میگه از روزی که این کوزه از من دوزیده شد این کوزه‌ی طلاع من که رجبش با هیش کس از این ماجرات دو نفر بیشتر خبر نداشتم یکی من که هیچ چی نگفتم قدرت ببینید خودداری رو <تصفيق> یکی کسی برده بنابرای باید خاجی میگه من قرص خارس رو عزیز میکنیم میره حالا قرصم اینه میگه من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانه تو هم ضروری کرامت چنان بخوان که تو دانه یعنی کسی خبر نشه از از طرف تو هم کسی خبر نشه خیال تیغ تو با ما حدیث تشنوع آبه این زیبایی این بیت در اونجاست که تیق رو شمشیر آبدار و تیز رو خیلی به آب تشدید کرد. به خصوص در داستان سمک ایار میگه کاردی برکشید چون قطره آب یعنی خیلی تیز بنابراین خیال تو با ما حدیث تشن و آب است این آب یه چیزی هم داره گوشه هم داره به اون تیغ میگه ما به شوق تو، درست همون حالتی رو داریم که تشنه برای رسیدن به آب داریم خیال تو با ما حدیث تشن و آب است از دیرخیش گرفتی بکش چنان که تو داریم امید در کمر زرکشت چگونه نوبند؟ دقایقی ای نگار در آن میان که تو داش اولاً میوان در شعر خاجه و هم سعدی و دیگرون همونی است که ما حال میگیم کمر میگیم کمرم درد میکنه و او اونم گفتن میوان و اون که ما بهش میگیم کمربند اون رو بهش کمر نبنیدوی ایزان میان طرفی کمروار اگر خود را بگیم میدرد میانه کمر رو آدم با دست ندازه کمر برای اینکه به مثال برسه کمربند هیچ وقت بهره ای از این مثال نمیذاره برای اینکه خودش رو در میانه میدی برحال میان یعنی کمر امروز و کمر یعنی کمربند بعد میگه که چه تو در کمر زرکش تو کمر یعنی کمربند آراست و زرکش که نشون میده که باید طرف خطابم مرد جاسنگینی باشه یا کسی باشه و هر حال امید در کمر زرکشت چگونه نبندم حالا باز دقیقه یعنی چیز خیلی ظریف دقیق توی بیت دیگه خواجه می خوب اینو تفسیر میکنیم که اینجا می فرماید که میان او میان او که خدا آفریده است از هیچ حالا این آفریده و هیچ شد این طرف این نصر توجه بکنید میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیده ایتی تا نکن اینجا هم، امید در کمر زرکا شد که یعنی نبند دارد در آن میان میان یک تو, تو یکی توسیه فازی در این ها بند کدا مولانا همزبان شیستی یار با نامهرمان شنگی هست ایده تا همزبان تا هر وزان وکنیم که یه‌روزی تکینه تا هاونه فترمونت را بهولت هر دی مذاکره بار که در هم زون خان چون تشن آزادی و زنده جوانی وی دیگران تاونه و هاونه از کسی که آدمی است که پرچم خود را آن کسی از کمایی و آن جن که از زندگی بیا. همین همه و اینجا محروم خواندویر چه نوسته بیشتر مایی رو به نشکه غزمین دوی که اونجا گوزرانه دو گوزرانه بیا ما این یه مطور برزوری ها که قرطیتون بودم اوزارانی گوزرانی تو زنمانی شده باز پیداست شخص بیشتر شخص اشعاده می کنم احتمال قبلی هم هست که تاقش داره احتمال که من چند بار بکنم دیست سال از دوران شاهری خواهجه در دوره شاهده داره و در این مرس به روزگار یعنی این پختگی و تمالشن از که بکنم عبدال شهرهایی هم زرهایی که قبل خواهده شده خوبه بلی سولی نمیشه که برای ما باردگیم هم که هیچین ها رو که جلد روزگار میکانه به وقتن شدار ما پرندو بعد باقی ساسوزا بوده که دوستم داشته که گیبایی که ستایش کنن و باز بخش که میگه تو که این چه سره مرده بخشتن خلایق که توی یک سفستانی که گیبایی هنگ دنگش رو درودن به و یک دنگش رو بین همه مردم اونجا که این موالی قصد، موالی قصد، در نیست، اونا که اون سهاد خلق و امر هر کاری می‌خواهد می‌کنه این عدل نمی‌کنه، نمی کده خدا رو تو میزان خود نستند کسه عدل این صوره خواستار نیست حالا گذشته از این خب تو چه سیاره که این زیبایی آمده که بغمبر فرمودن که ایلسوف زیباتر از من بود برادر ایلسوف زیبایتر از من بود ولی من ملاحقی بیشتر از این دفتن که توی یوسف ثانی نی بدیدم به حقیقت به هزار یک یادم تو خودتی رفتار تو آینه اکرار الهی دیگه توان کانتن را به نهانی یک یادم باید اینجا نایمه شیرین تر از آن به شکرخنده با این شیرین و خوستو و نا شکرده شیرین تر از آن به شکرخنده ای و خوستو و که تو شیرین نزمان خوستو و خوانه در زن اتاره خوستو و قردیس که دو خوشی کرده تو سیوین تار از اونی که من بگم که سیوین زمان همه ی رو دواره چرا چرا؟ چرا؟ بله، بله، خسو، پاستانه خسو اصلا لغب پاستانه، پاستانه تمام سوسو سوسو اردی سوسو کافی سوسو خدا، خوان پیمان الی و هر روز معالجی صاحب عوش روان یعنی دارای نام و آوازه مشهور دارای شهرت مشهور بود سمی با صاحب می گونن که کمک می‌خوان به ما واقعا که یکی از متاحبای چند روزه یعنی است در حتش که دهتر بود که نظامی داستان شکر رو در آورد. نمیابرد اینکه سیری اینکه به مراتب دیباتر و رو و این هم بود که دستش بود فقط میدفتش که منو بگیید به رقایت نظام و خصوصیری باید خیلی داوت ما به سنیم خواهد شده باید خبر میگه میخوام بریم الباکی پیر مردز به میخوام بریم الباکی میگم کار گربان خواهد یه خانمی هست در اسباهان به آن شکر شکر اسباهان آقای خسوف عربید از مبانی را میان خایی که گسته با حریفای بزنش میان خونه شکر به و آقا طالب خانم شوشتر بود و اونایتگرم به فضیبایی می‌کرده می‌کرده بعد یه شب خدمت خانم بوده و صحبم مثل که خیلی از خونرش خودش, خودش, خودش می‌امده کسه خود چجوری بیدی؟ شوشترم این که تو بشه یک کنی سرگی بکردیم این که دهنت بوده خیلی خودش. حالا بعد این, این سوال دوباره نامی میادیم میادیم بله دوباره میاد و شبیه سال میدارن و بس چیزی میپرسیم، سال سبتم ظاهراً تا اونجایی که حافظه من چیز بعد یکی از چکنج میپرسی چکنجه می بالا حقیقت اینست که من دخترم و مرد برای دست نزدیم و من نهمایی که میان برای من مصفتون می‌کنم به طور که این بعد جایی که از کنیزان رو می‌پرسن خب این باید به خیلی هم بر بخوره که ده از مدارین رافت به دومده ازباهان که تعمش شکره به چشمه بلی دو جایی شیلوسفیق به دنگه بلی به اکنونه که اینکه می‌شنه به خانم باکران، کرن، پوری میگه بیاریم دفتر و دسته که معذردار و ملا بیاریم خانوم عرض میکنیم البته بعد هم، یکه هیچ صحبتی از شکر میگه در داره، تمومیم بعد هم شیریم، مادرهای عشق و سینگرس رو کافت داریم، میکنیم به وسال خستان میرسیم این اصلا زشت، به این مناسبت آمدید که خود رو اشیرین تقلیلیست از داستان سرایی از ژیس رامی در ژیس و رامی، ژیس، زن برادر فردار زن برادرشی، ننگ خانواده است اصلا اسباب اصواب رسوایی و بدبختی تو خاندان سلطنتی ممکنه خون هر دوشون دشته بود چهزار بدبختی هست. و اینا از بس که بدبختی کشیدن و گرفتاری کشیدن و دیست و رامین و این برون بر در رفته و یه دوستی بهش پیشنهاد میکنه که آه زن که قهر نیست گلند شد برو یه سفری بکن بسه این که این از بیرون بره آخر این مایه رتباییه تو زنیچرم داری میکشی از بمیبری خودتو داری میکشی از بمیبری سراپایی همه ننگ و بدنامی و دیشارگیه. تو برود تو دنیا به روی زیبا هست شاید که فکر از خاطر کنید در رامین میره و در گراب با جخته رو گروه میشه به نام گل که زیبا بوده خوب بوده و خلا فهمی میگه که خانم من عوضتان شما اینا میگه که نه شما دلتر که و که رامین میگه نه نه من چیز خلاصه قرار و قول و همه چیز میتونم و ازدواج میتونم با این برای این که سودای 20 از سرش بری بیدونم. بعد هم نامه برمی داری می نمی که من اینجا با گل زندگی دارم تا هم بهتره فکر زندگی پاید بعد از چندی احساس میکنه که من گل جای بیس رو در دلش و میذاره میره میذاره میره و میاد سراغ بیس و داستان ادام پیدا این کاملا طبیعی که ای عاشقی این صورت با اون عشق بی فرجام پکش اینو بکنه که یک شکل بده زندگی خودش از این سرگردونی، آباریگی و بدنامی و قطر رو در این کرفین اونا شیرینی که سرکار نحک شده از قطرد بلند شده اومده بسر شیرین اونجا مونده سودا تنها به سودای عشق اینو گلش کنه داره شکایت اسپانی رو بگیره این, این قصه به تقلیل از قصه گل در داستان بیترامی ساخته شده و بعد خیلی خدا پیاموزی دو صورت صورتگیر رو اول بار که این مطلب مطرح شد مران دو صورت صورتگیر سر کلاس دخن سنجی سال اول ازانش که دارد یاد ما فرمود که این،, این داستان خوب نیست داستان شکاری ازمانی داستان خوب این نیست و بهتر بود که نظامی نیاره برهر اینا همه همه اینا رو تو این در جمع کرده شیرین تر از آنی به شکرپنده به ای خست رو خوبان که تو شیرین زمان تشبیه بعد بدیم دهان و تنگ دهانی رو چقدر زیبا بود تشبیه دهانت نتوان کرد به خونچه هرگز نبود خونچه بدیم تنگ دهانی सात بار بگوستی که دهم زان دهنت با ست مسئولی یعنی زان دهن تو از آن دهن تو کام میدم صد بار بگفتی که دهم زان یعنی دهنت کام, ده. کام، چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی حافظ خیلی اشاره داره به این سلطن ده زبان دارد شکل زبان دیگه که بلیش تشبیه ظاهره شکل ز مرگ صبح که سلطن آزاد چه جوج کرد که با ده زبان کمون راند ست بار گفتی که ده همزان دهنت کام چون سوسن آزابه چرا جمعه زبانی یعنی حرف میزنی و عمل نمی کنی تویی به ده هم کامت و جانت به ستانه تیلی بیت زیبایی مثل آب خوردن همه کلمات این مترا, مترا تکرار شده با این حال در نهایت زیبایی دویی بدهم جامت و, و جانت بست کامم ترسم ندهی کامم و جانت بست کامم <تصفح> تو خدنگ از سفر جان گذر آمد بار حال کردم خدنگ اسمت گرخت گرخت نیست که چوبش هم سبکه و هم خوقلاده محکمه برای اینکه تیر اگر سنگین باشه با هوا جلوشو می‌باشه باید ثبوت باشه و اگر ثبوت باشه و محکم نباشه به محض اینکه خورد و عدد خورد می‌شه خودش می‌ریزه چون از حرکت یا دفعی و سکون طاقت نمی‌داره اینه که چوب محکم میخوان و ثبوت اینواره برخت خدم و هم چیر خدنگ هست هم زین خدنگ هست برای اینکه میدونید که زیر زین هم یک چوب بندی داره ما اون چرم ها میگیدید اون, اون روشن که نگاه کنید، آستری داره که میخونید رو هست ولی وسطش چیه که نمیدونید وسطش یه مستوب بندی داره که قرار بگیر روی پشک و این چوبا چوب خدنگ برای که ثبت باشه و محکم باشه این زین هم میگن زین خدا. ولی وقتی که صحبت سفر باشه اونا بگم خدنگ یعنی کیه دیگه؟ کشم تو خدنگ از سفر جان گزر آمد بیمار که دیده است بگیم سخت کمانی سخت کمان هرچی کمون زش محکمتر بسته میشد بازوی طوانه تایی میخواستیم تا گوش رو کشه این یکی از علایم بود فهلوانی که میاند توی شهری روخ این کمان من میتونه بیاد بکشید اگر میکشیدن، اگر نمی تونستن های اون شهر بکشن کمان او رو می روخ حد که من در فهلوانی از شما سر این است که سرخ کمان برنی آدم از دوراور و دورمند و پیرندازی درجه یک برای اینکه بیمار و چشم معروف به بیماری دید چشم محارت خماری که داره چشم رو به زیباییش توصیفش می به بیماری گفت در مداوای دو بیمار خرو ماند چشم بیماری کسی و دل بیمار چشم تو خدنگ از فرید جان گذرانی بیمار که دیده است به دید این ساعت کمار. چون عشق بیندازیش از دیده مردم آن را دمی از نظر خویش بران خوشنید شما از گرافیک فرانسوی و قلم که قلم ها کتابه در اسم شو کتاب هم میخواستلتر هم روان یعنی دارای روان جاوید روان که روان روش روش به معنی مرگ. یه معنی روش مرگ انا روشه روان او علامت علامات نفیه انا روشه روان یعنی دارای روان بی و در شاهنامه در شاید مورد شاید بیشتر در مراسم دعا کسی میمده جلوشات میگه بدو گفت شاه ها انونشه بادید یعنی انونشه بادی، یعنی روان بینه یه بیتی گذاشتن نسخه هایی که من اون خانداری داشته نه تخلص در جلسه پیش بود یه قذل دیگه بود که تخلص نداشت و دوستان پرسیدن که آیا این من ها یعنی همین یه غزلی که تخلص نداره که گفتم من نمیدونم حالا جوابش هست که نه همون یه غزل نیست غزل های دیگر هم هسته. تخلص نداره اونجا یه بیت درست یاد درست کردم یا خودم حافظ ساخته و بعد خوشش نایمه داریم تو؟ حافظ چیتو؟ در راه تو حافظ تو قلم کرد به سر سرکایی چون نامه چرا یک دمکه از لطف نخوند چیز قشنگی نیست قلم از سرش را میره و میگه که حافظ مثل قلم با سر اومد به طرف تو نخواهد با سر بیاد به طرف تو ولی تو مثل نامه رو نمیخونی خودت از اون دیگاهی رو مثل من نیست فضل چارسد جست پنج تو هم جانا و میدانم که می‌دام که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوام ملامتگو چه دریا بد میان عاشق و معشور نبیند چشم نابینا خصوص اسرار فنهانی بی زلف ظلف و سوتی را به تابازی و رکس آور که از هر رقع دلقش ازاران بط بی افشان گشاد کار مشتاقان آن ابروی دلبند است خدا را یک نفس گنشین گره بکشا به تیشان ملک در سجده آدم زمین گوست تو نیگه کرد که در حسن تو چیزی یا بیش از طوق انسان چراق افروز چشم ما چراغ چشم ما نسیم زلپ خوبان مباد این جمع را یارب تم از باب این فریشان دریق شبگیری که در خواب سهر بزر ندانی قدر وقتی دل مگر وقتی که درم. معلول از همراهان بودن طریق کاروانی نیست به دشواری دوشباری منزل به یاد حفظ آسانی پیال چمبر زلفش فریبت میدهد حافظ نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبا کاروانی منزل و دوشباهی منزل و آسانی منزل باز گمام میکنم خطاب شاشه جار یکی از زلاحلش اینه که میگه نادیده میبینی و نندشته میخوانی و این اشاره است به نمیدونم حدیثی یا مسئلی که عرباب و دوله ملهمون به صاحبان دولت الهام میشه از اتا حالا الهام بخشون سیاه و موساد و کاغبه و ناس که میرفتونن غذایه رو سابق بهشون الهام میشون برحال نادیده رو می دیدن منوشته هم میخوندن هوا خواهد تو هم جان آب و میدانم که میدان که هم نادیده میبینی و هم منوشته میخوانی این واسط بود فقط برای ارباب دولت کردن ارباب دولت ملهم ملامت او چه دریابد میان ملامت بود ملامت او چه دریابد میان عاشق و معشوق نبیند چشم چشمنابینا خصوص اسرار فنهانی آها یه ایده عیب جویی از دیگران و سرزنش کردن دیگران اینه که آدم از عیب خودش آخری و از یه مدت که این عادتی زشت رو پیدا کرد بعد فکرونه خودش که عیب ندرست این مردم که اون یکی دوزه و اینکی سزه و اینکی نمیدم چیه والا خیل اینه که میگه چشمش نابیناست اینه آدم از گیدن عیب خودش گفت که سعدی میگه که منجه میرفت تو خونهش یه نرخری رو دید بازنش به هم نشسته داد و فریادش پلند شد و افتقا و سرسدا بدی از اونجا گذشت گفت و برای اونجا فرق چه دانی چیزی به ندانی که در سرایت کیست. حالا ملامتگو هم همینطوره ملامت بود چه در میان آشق و مشرور؟ نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی بیفشان زلف و سوفی را به پادازید و رقص آور که از هر رخه دلقش هزاران بود بیافشان. بگه زلطه بیافشان افشان که صوفیت بره نشاط بیاد رقص شروع کنه تا از هر واسله شعقهش هزار تا بطیر بطیر بود که لازم نیست حتما یه چیزی باشه بطیر دیدم از آج در سوی منات مرسته شده در جاهلیت منات هزار تا آدم آدم پول زن مغام هزار چیزی دیگه ممکنه به قوت آدم و شیفته و دیوانه او بشه آدم میگه صوفی ظاهرا دعوی پریدگی از دنیا و انقطاع از دنیا رو میکنه ولی تو بیارش سر نشاط، تا ببینی که از هر پاره درگش چند تا بسیم سید این مخصوصش همون تو دل بسیدی های به دنیا و مسائل دنیا دیده. روق اونیه وصله، یعنی چی و این که اشخاص می نیسن رقعه ی خدمتونه حل برای شکست نفسی، یعنی کار کاغذ بی کرده سازن کتن رقعه دلغش یعنی وصله دلغم که خرقه سوگی گشاد کار مشتاقان تران ابروی دلبند هر. اولا گشاد و بند، دل بند دوباره این که این گشاد مستره یعنی گشاده هم نون شفتد مستر مرخم بشه نون مستری شفتد گشاد بینی گشاده گشاد کار مشتاقان در آن عبروی دل بند خدا را یک نفس بنشین گره بگشاده یک لحظه آرام بگیر عخمت هم باز کن بسه این مشتاقان کارشون گشاده بشین این که عرض کردن برای چیزه اینجا ادراه اینجا خیلی اغراق شاعرانه هست ملک در تجره آدم زمین گوست تو نگیم کرد که در حسن تو چیزی یافت بیش از طور انسان البته این که خیلی حرف سدن پیغمبر اکنه هم فرموده است که من نبودم مثلا زمین و آسمان اینا فلغت نمیشید لولاک لما خلافتالاخلاف و باز حدیث داریم از ایشون که کنت و نبی و آدم ها بین الماء و من پیغمبر بودم و آدم هنوز میونه آب و گل بود یعنی هنوز درست نشد. به هر حال اینجا خاجات زمین زنهاد که ملک وقتی که آدم رو سجده می کرد مراد زمین بوسه تو بود زمین بوس هم از اصطلاحات در باری می کنید توازه رو